فصل 22م عید فتیر که به فسح معروف است نزدیک میشد سران کاهنان و ملایان در صدد بودند بهانه پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند زیرا از توده مردم بیم داشتند شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از دوازده هواری بود وارد شد یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت می گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فتیر که در آن قربانی فسح بایسی ذبح شود رسید. عیسیا پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد بروید و شام فسح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم آنها پرسیدند کجا میل دارید تدارک ببینیم عیسی پاسخ داد گوش بدهید به محض اینکه به شهر قدم بگذارید مردی با شما رو, به رو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند به دنبال او به داخل خانه ای که او میرود بروید و به صاحب آن خانه بگویید استاد میگوید: آن اتاقی که من با شاگردانم فسح را در آنجا خواهم خورد کجاست. او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فسح را دیدند وقتی ساعت معین فرا رسید عیسی با رسولان سر سفره نشست و به آنان فرمود چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فسح را با شما بخورم به شما میگویم تا آن زمان که این فسح در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد دیگر از آن نخواهم خورد، بعد ای به دست گرفت و پس از شبگزاری گفت، این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید، چون به شما میگویم، از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا میرسد من دیگر شراب نخواهم خورد، همچنین کمی نان برداشت، و پس از شبگزاری آن را پاره کرد و با آنان داد و فرمود، این بدن من است، که برای شما تسلیم می شود، این کار را به یاد یادبود من انجام دهید. به همین ترتیب، بعد از شام پیاله ای را با آنان داد و فرمود، با خون خود که برای شما ریخته می شود، پیمان تازه ای بستم و این پیاله نشانیان است. اما بدانید که دست تسلیم کننده من با دست من در سفره است، البته پسر انسان چنانکه که مقدر است به سوی سرنوشت خود میرود اما وای به حال آن کسی که به دست او تسلیم می شود آنان از خودشان شروع به سوال کردند که کدام یک از آنها چنین کاری خواهد کرد در میان شاگردان بحثی در گرفت که کدام یک در میان آنان از همه بزرگتر محسوب می شود عیسی فرمود در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حک روایی می و صاحبان قدرت ولی نعمت خانده اما شما اینطور نباشید برعکس بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد زیرا چه کسی بزرگتر است آن کسی که بر سر سفره می یا آن نوکری که خدمت می کند. یقیناً آن کسی که بر سر سفره می نشیند. با وجود این من در میان شما مثل یک خدمت هستم شما کسانی هستید که در آزماش های سخت من با من اید. همانطور که پدر حق سلطنت را به من سپرد من هم به شما می سپارم. شما در پادشاهی من سر سفره من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران دوازده تایف اسرائیل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 من حاضرم با تو به زندان میافتم و با تو بمیرم عیسی فرمود ای پتروس آگاه باش امروز قبل از آنکه خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی عیسی به ایشان فرمود وقتی شما را بدون کفش و کیسه و کوله‌بار روانه کردم آیا چیزی کم داشتید جواب دادن خیر به ایشان گفت اما حالا هر که یک کیسه دارد بهتر است که آن را با خود بردارد و همینطور کول بارش را و چنانچه شمشیر ندارد قبای خود را بفروشد و شمشیری بخرد چون میخواهم بدانید که این پیشگوی کتاب مقدس که میگوید او در زمره جنایاتکاران به حساب آمد باید در مورد من به انجام برسد و در واقع همه چیزهایی که درباره من نوشته شده در حال انجام است آنها گفتند خداوند نگاه کن اینجا دو شمشیر داریم ولی او جواب داد کافی است عیسی بیرون آمد و تق معمول رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند وقتی به آن محل رسید با آنان فرمود دعا کنید که از وسوسه دور بمانید عیسی به اندازه پرتاب یک سنگ از آنان فاصله گرفت زانو زد و چنین دعا کرد ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من، بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته ای از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت استراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل های خون بر زمین می چکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد، آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود، خواب هستید، برخیزید و دعا کنید تا از ها دور بمانید. عیسی هنوز صحبت میکرد که جمعیتی دیده شد و یهودا یکی از آن دوازده حواری پیشا پیش آنان بود، یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد، اما عیسی به او فرمود، ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می کنی؟ وقتی پیروان او آنچه را که در جریان بود دیدن، گفتن، خداوندا شمشیرهایمان را به کار ببریم، و یکی از آنان به قلام کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید، اما ایسا جواب داد، دست نگه دارید. و گوشان مرد را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند و مشایخی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود، مگر من یاقی هستم که با شمشیر و چماغ برای دستگیری من آمده اید. من هر روز در معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید، اما این ساعت، که تاریکی حکم فرماست ساعت شماست. ایسا را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. پتروس از دور به دنبال آنها میآمد. در وسط محوطه خانه کاهن اعظم ایده آتش روشن کرده و دور آن نشسته بودند. پتروس نیز در بین آنان نشست. در حالی که او در روشنای آتش نشسته بود، کنیزی او را دید و به او خیره شده گفت، این مرد هم با ایسا بود، اما پتروس منکر شد و گفت ای زن من او را نمی شناسم. کمی بعد یک نفر دیگر متوجه او شد و گفت تو هم یکی از آنها هستی، اما پتروس به او گفت ای مرد من نیستم، تقریبا یک ساعت گذشت. و یکی دیگر با تاکید بیشتری گفت البته این مرد هم با او بوده چون که جلیلی است اما پتروس گفت ای مرد من نمیدانم تو چه میگویی در حالی که او هنوز صحبت میکرد بانگ خروس برخاست و عیسی خداوند برگشت و مستقیما به پتروس نگاه کرد و پتروس سخنان خداوند را به خاطر آورد که به او گفته بود امروز پیش از آنکه که خروز بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی. پتروس بیرون رفت و زار زار گریست. کسانی که ایسا را تحت نظر داشتند، او را مسخره کردند، کتک زدند، چشمانش را بستند و میگفتن حالا از قیب بگو کی تو را میزند و به این طرز به او احانت میکردن. همین که هوا روشن شد، مشایخ قوم سران کاهنان و ملایان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند به ما بگو آیا تو مسیح هستی؟ عیسی جواب داد اگر به شما بگویم گفته مرا باور نخواهید کرد و اگر سوال بکنم جواب نمیدهید اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست همگی گفتند پس پسر خدا هستی عیسی جواب داد خودتان میگویید که هستم آنها گفتند چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم